برود به ساحت رابطه روشن آیا می توانیم رابطه اعتیادی خود را به رابطه ای از سر بصیرت و روشنی تبدیل کنیم؟ آری با حضور و تشدید آن به وسیله عطف توجه بیشتر به لحظه ی حال می توانی به چنین رابطه‌ای دست پیدا کنی چه تنها باشی و یا با یار و همپیمانی شکوفایی عشق نیازمند نور حضور توست این نور مانع از آن می شود که به اسارت فکر یا دردمندی بدن درایی و یا اینکه خود را با آنها یکی بپنداری برای شناختن خود به عنوان هستی سکوت عشق و شادمانی نهفته در زیر لایههای فکرها صداها بیزاریها و غمها رهایی است روشن شدگیست. گزستن از دردمندی بدن موجب جاری شدن حضور در بستر درد و رنج میشود و درد و رنج را استحاله میبخشد گسستن از فکر به معنای ناظر خاموش فکرها رفتارها و الگوهای ذهنی خود بودن است اگر به خودخواهی غذا نرسانی ذهن نیروی خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند تو را وادارد که قضاوت کنی در برابر آنچه هست بیستی و بدینسان، سان نزا، اندو و درد و رنج تازه بیافرینی در واقع به محض که به واسطه پذیرش آنچه هست قضاوت متوقف می شود تو از ذهن رها می شوی. سان فضایی میافرینی برای عشق شادمانی و آرامش ابتدا قضاوت درباره خود را کنار بگذار آنگاه قضاوت درباره یار خیش را نیز کنار خواهی گذاشت مهمترین عاملی که سلامت رابطه را تضمین میکند پذیرش کامل یار خود است همان گونه که هست بدون آن که درباره او قضاوت کنی و خواهان تغییر او باشی این کار بیدرنگ تو را به فراسوی نفس میبرد آنگاه همه بازی های ذهنی و چنگ انداختن های گونه، ناپدید میشوند. دیگر نه مقصری میماند و نه قربانی نه تهمت ای و نه متهمی در این صورت وابستگی نیز از بین می رود دیگر یکی از دو طرف رابطه بر الگوهای ناآگاهانی ذهنی دیگری تکیه نمی کند و بدین سان او را به حفظان الگوها تشویق نمی کند بنابراین یا باید آشغانه از هم جدا شوید و یا هر دو با هم به جرفای لحظه حال بروید به دل هستی آیا این کار ساده است؟ آری ساده است عشق مرتبه ای از هستی است عشق تو بیرون از تو نیست در جرفای وجود توست ممکن نیست عشق را گم کنی و یا اینکه عشق تو را ترک کند عشق به کسی دیگر و یا صورتی خارجی وابسته نیست در جرفای سکوت حضور خیش می توانی بیشکلی و بی زمانی واقعیت خود را به عنوان بعد غیر متجلی زندگی احساس کنی همان بعدی که به صورت فیزیکی تو حیات می بخشد سان می توانی حیاتی مشابه را در درون همه چیز و همه کس احساس کنی اکنون نگاه تو از هجاب صورت و جدایی ها در میگذرد و بازی های اندر پرده را می بیند این حالت حالت تجربه وحدت عارفانی همه چیز و همه کس است این حالت عشق است خدا چیست؟ آن حیات یگانه جاودانه که بنیاد آد همه زندگی است. عشق چیست؟ تجربه حضور آن حیات یگانه جاودانه در خود و در همه چیز و همه کس یگانه شدن با آن یگانه. بنابراین همه عشق‌های حقیقی تجلی عشق به خداوندند. عشق هرگز گزینش نمیکند، همانطور که نور خورشید گزینش نمیکند. نور خورشید به کسی بیشتر از کس دیگر نمیتابد استثناء قائل نمی شود استثناء قائل شدن عشق الهی نیست عشق نفسانی است با وجود این شدت و ضعف عشق حقیقی در آدمها فرق می کند کسانی پیدا می شوند که شفافتر و شدیدتر از دیگران می توانند عشق تو را در خود منعکس کنند و به تو بتند اگر او هم احساسی مانند احساس تو نسبت به تو داشته باشد می توان گفت که رابطه‌ای حقیقتا عاشقان شکل گرفته است. آن رشته ای که تو را به او وصل می کند همانی است که تو را به آدم دیگر به پرندگان درختها گیاهان و ستاره ها وصل می کند. فقط شدت و ضعف احساس تو در این موارد فرق می کند. ماهیت احساس یکیست حتی بر رابطه‌های اعتیادی و مبتنی بر نیاز نیز گاهی بارقه‌ای از حقیقت میتابد که فراتر از نیاز متعادانه طرفین به یکدیگر است در این لحظه‌ها ذهن تو و ذهن یار تو موقتا خاموش می‌شود و دردمندی بدنتان به حالتی غیر فعال در درمی‌آید این حالت در لحظه های نزدیکی فیزیکی یا تماشای معجزهی به دنیا آمدن فرزندتان یا در لحظه مرگ یکی از شما یا در لحظه بیماری جدی یکی از شما به وجود می یعنی لحظه هایی که ذهن نیروی خود را از دست می دهد در این لحظه ها هستی تو که معمولا زیر لایه‌های ذهن مدفون است خود را آشکار می کند و همین هستی است که ارتباط حقیقی را میسر می‌سازد ارتباط یعنی اتحاد درک یگانگی ذاتی که همان عشق است گاهی این حالت چند بیش بیش نمی‌پاید مگر آنکه آنقدر حضور داشته باشی که ذهن را دور نگهداری و الگوهای کهنه ذهنی را کنار بگذاری به محض اینکه ذهن و یکی انگاری خود با آن باز می گردند تو دیگر خودت نیستی بلکه تصویری ذهنی از خودت هستی اینجاست که دست به بازی و نمایش هایی تا نفس خود را ارزا کنی تو بار دیگر ذهن انسان می‌شوی، در حالی که تظاهر می کنی انسان هستی آنگاه با دیگری رابطه برقرار میکنی و نمایشی را به اجرا میگذاری که به غلط آن را عشق مینامی گرچه شهود بارغه های ناپایدار از عشق حقیقی امکان دارد اما عشق حقیقی پایدار زمانی میشکفد که تو از یکی انگاری خود با ذهن کاملا رها شده باشی و حضور نیرومند تو بتواند دردمندی بدن را محف کند یا حداقل بتوانی به عنوان ناظر برخیشتن حضور داشته باشی. انگاه دردمندی بدن نمیتواند بر تو چیره شود و عشق تو را ویران کند.